سنگ پشت پرحرف روزی بود و روزگاری بود در صحرای سبز و باسفایی در دامنه کوهی دریاچی بزرگی از آب برف و باران جمع شده بود و دو مرغابی و یک سنگ پشت در آنجا زندگی می کردند سنگ پشت حیوان است. برای همین مرغابی ها با او دوست شده بودند و هر روز همین که از سیر و سیاحت روی آب خسته می شدند، به کنار خشکی می آمدند و با سنگ پشت می نشستند و از همه چیز و همه جا صحبت می کردند و قصه هایی را که می دانستند می گفتند و تفریح می کردند مدت ها همین بود تا اینکه یک سال برف و باران نیامد و از خشکسالی در فصل تابستان آب دریاچه خیلی کم شد به طوری که نزدیک به خشک شدن رسید و مرغابی ها که نمی توانند بی آب زندگی کنند فکر کردند از آنجا سفر کنند و به دریاچه بزرگی که در پشت کوه بود بروند بعد از اینکه همه یه فکرهای خود را کردند و تصمیم خودشان را گرفتند یک روز موضوع مهاجرت خود را با سنگ در میان گذاشتند و گفتند اگر چه سالها در اینجا زندگی کرده ایم و با این محل خو گرفته ایم ولی امسال آب کم شده و زندگی ما هم بی آب ممکن نیست پس ما ناچاریم به درگاچی دیگری در پشت کوه برویم ولی از دوری تو خیلی ناراحت می شویم سنگ پشت همین که این سخن را شنید بسیار غمگین شد و گفت اگر شما چنین کاری بکنید و مرا در این بیابان تنها بگذارید از قم و قصه میمیرم پس فکری بکنید که هر جا هستیم با هم باشیم مرقابیها گفتند ما هم خیلی دوست داریم با هم باشیم ولی چه باید کرد که در اینجا آبگیر گیر دارد می میشود و به هوای دوستی و رفاقت از جان عزیز نمیتوان گذشت سنگ پشت گفت. ای دوستان عزیز میدانم که زندگی بی آب برای من هم مانند شما مشکل است و من هم میدانم که دنیا بزرگ است و در جاهای دیگر آب فراوان است پس بیایید حق دوستی قدیم را نگاه داریم و هر جا که می روید را هم با خودتان ببرید مرغابی ها گفتند ای رفیق مهربان آرزوی ما هم این است که تو را تنها نگذاریم ولی مسافرت ما با تو جور در نمی آید چون تا دریاچه بزرگ پشتکو راهی دور و دراز است چون در راه دور پای ما طاقت راه رفتن بر روی زمین و همراهی تو را ندارد و تو هم نمی توانی پرواز کنی این است که همراهی ما در این سفر دور و دراز ممکن نیست و اگر غیر از این است خودت بگو چه کار می توانیم بکنیم؟ سنگ پشت گفت برای هر مشکلی راه چاره است و هیچ کاری نشد ندارد و چون شما از من باهوشتر هستید بهتر می توانید راهی برای حل این مشکل پیدا کنید مرغابی ها گفتند حقیقت این است که برای ما یک راه وجود دارد ولی هر کاری تا درست انجام نشود به نتیجه نمی رسد ما که در این مدت تو را شناخته ایم اینطور می فهمیم که نمی توانی رفتار درست داشته باشید سنگ پشت گفت مگر من چه عیبی دارم؟ گفتند عیب ای تو این است که پرگو و سباکستی سنگ پشت گفت اختیار دارید من که از شما آهسته تر راه می رویم. پشت من هم سنگ است و صدای من هم کوتاه تر است این شما هستید که همیشه روی آب قارقار قار, قار می کنید. از کجا معلوم است سنگینی و آرامش من کمتر از شما نباشد؟ مرغابی ها گفتند حرف ما این است که تو زود عصبانی میشوی. تا کسی چند کلمه برخلاف میل تو حرف زد می خواهی زود جوابش را بدهی تا از گوشهی صدایی بلند شد میخواهی بفهمی چه خبر است نمی توانی مدتی سکوت کنی و خون سرد باشی و زبان خودت را نگهداری تا چیزی را خیال کردی درست است می خواهی تمام آن را بگویی برای اینکه با ما همراه باشی خون سردی و آرامش لازم است سنگ پشت گفت. خیلی از شما متشکرم که ای به مرا به من گفتید من سعی می کنم اخلاق خودم را اصلاح کنم قول می دهم هر چه بگویید رفتار کنم مرغابی ها گفتند اگرچه ما تو را چند بار امتحان کرده ایم و نمی توانی به قول خود وفا کنی اما حالا که می خواهی با ما همراه باشی اگر می با خوشی و خوبی به مقصد برسیم باید قول بدهی و شرط کنی که در بین راه یک کلمه هم حرف نزنی. سنگ پشت گفت به این چیزی نیست من حاضرم اصلا در راه نفس هم نکشم مرغابی ها گفتند حالا گوش بده ما یک چوب می‌آوریم و تو وسط آن را به دندان می و ما هم هر دو سر آن را می‌گیریم و پرواز می و می رویم و خیلی زود به مقصد می‌رسیم. ولی از حالا این را بدان که ممکن است در بین راه مردم ما را مسخره کنند و به تو بخندند پس تو باید کاملا آرامش خود را حفظ کنی و یک کلمه حرف نزنی چون که معروف است دروازه را می شود بست ولی دهان مردم را نمی شود بست مردم در هر حال از دیگران ایرادهایی می گیرند شرط موفقیت ما در این راه همین است سکوت سکوت خونسردی و پیشرفت. رفت سنگ پشت گفت هارچاس هرچه میخواهد بگوید مطمئن باشید که من به حرف مردم اهمیت نمیدهم مردم حرف خودشان را بزنند تا خسته شوند ما هم کار خودمان را میکنیم تا به مقصد برسی آن وقت مرغابی ها چوبی آوردند و سنگپشت میان آن چوب را به دندان گرفت و آنها هم دو سر چوب را گرفتند و پرواز کردند وقتی پرواز کردند و رو به راه گذاشتند راه عبورشان بر بالای آبادی بود یکی از مردم ده مرغابی ها و سنگ پشت را در آن حال دید و آنها را به دیگران نشان داد و فریاد زد بچه ها ببینید مرغابی ها چطور سنگ پشت دارن مردم نگاه کردند و از این وز تعجب کردند و هر یکی چیزی گفتند کم کم صدای مردم زیاد شد و همه از اینکه سنگ پشت را روی هوا میدیدند تعجب میکردند و او را به همدیگر نشان میدادند سنگ پشت از هیاهوی مردم خیلی عصبانی بود اما چون قول داده بود هیچ حرف نزد تا چند لحظه ساکت ماند و فکر کرد که عجب مردم بی انصافی هستند چشمشان نمی توانند ببیند که یک بار هم سنگ پشت روی هوا پرواز کند مرغابی ها همچنان می رفتند و سنگ پشت فکر می کرد و مردم هم از دیدن آنها داد و فریاد می کردند سنگ پشت شنید که یکی می گوید ببین رفاقت اینها به کجا رسید که روی هوا هم یکدیگر ول نمی کنند؟ دیگری با صدای بلند گفت سنگ پشت را باش که به حوث پرواز کردن افتاده دیگر سنگ تاقت طاقت نیاورد و این حرف خون او را به جوش آورد و از همان بالا جواب داد تا چشم فوزول کور شود دهان باز کردن سنگ پشت همان بود و از بالا به زمین افتادن همان سنگ پشت به زمین افتاد و کاسه پشتش شکست و جان داد مرغابی ها که این را دیدند چوب را رها کردند و راه خود را ادامه دادند و گفتند وظیفه ما نصیحت بود که کردیم نصیحت گوش کردن هم لیاقت میخواد.